در نسی هفته میگه گای اوقات میشه که مبتدا در کلام ذکره میشه ولی ظاهرا خبری برای او بدون خبر یعنی خبرش محضوره و هر حذفی در کلام عرب اگر جایز باشه یعنی حصف جایز باشه مثل این مورد کلام برید قرینه لازم بود یعنی هیچ حذفی بدون قرینه صورت نمید. و اگر حذف واجب باشه غیر از دارینه نیازه به جانشین هم یه چیزی باشه که جانشین بشه و اون شی واجبه و لازم باشه حالا میگه اینجا برینه هست برای اینکه خبر در کلام ذکر نشه و حذفی که اینجا داره نام میبره حذف جایز نیست حذف که کیف در شماست شما میگید زیدون زیدون یعنی چی؟ یعنی عبی زیدون پدر من زیده به قرینه به قرینه سوال من شما رو حذف کردید ولی این حذف چیه؟ جایزه شما میتونید بگید زیدون و میتونید بگید عوی زیدون مبتدارو حذف نکنید یعنی قرینه رو که هست زیاد بهش اعتماد نکنید و مبتدار رو زکنید. این حسب جایز. اما این مواردی که داری منامون میخونید جاهایی که امکانی که ما مبتدار رو ذکر کردیم خبر رو هم با او ذکر کنیم وجود فقط مبتدار هست خبر شش 6-7 مورد بیشتر نیست که مبتدا هست و خبر واجب بود. هست و قد یوزی کرد مبتدا او بدون خبره یعنی و خبر ها وجوب می شود خبر وجوب یک ایشون مثال زده و حکم رو نگفته یعنی همین 16 هفته مثالی که داریم میخونیم تو کتب دیگر شاید غریب به دو سه صفحه در موردش نوشتن چون اول باید حکم رو بگه بعد مثالش بزنیم ایشون مثال فقط زنیم آه؟ مثل اینکه بگیم ما در عربی فاعل داریم مفهول داریم مزاکنه لک داریم جا و مجرور داریم غیر و غیره. همه رو نام ببریم هیچ کدوم رو نگیم که تعریفشون چیه بعد هم مثال بزنیم یه 20 مثال بزنیم خب اگه طرفی که میخواد اینو بخونه باید کنه اول احکامش رو بعد مثالش بگید. خب، یک نحو کل رجلن کل رجلن و زئیعۃ ال کل رجلن و زئیعۃ ال یا تو بعضی نو سخت داره کل رجلن و صنعتو هو. فرقی امکان چه صنعت باشه چه زئیعت باشه در جایی که یک اول جایی جایی که بعد از مطبدای ما واوه عاطفه ای آید که معنای سریح او که معنای سریح او معیت معیت و اقتران است ماییت و اقترام است. لذا خبر لذا خبر حصف می شود وجوبن چرا چون این خود این واقع معییت جاشو پر میکنه مثل این مثال کل رجل کل رجل و زیعته زیعت یعنی مال و منال. مستقلات چه همیش میشه زیاد هر انسانی مردی با مایملک خودش با هم چی هستن؟ بلی این هم مخترن هم کل رجونه و زیعته مخترنان این مقترنام که خبر بوده چه شده؟ حضر چی رو یک بار دیگه بگیم؟ بله؟ بله معنای زیعت یعنی هر مردی با زیعت و مستقلات و مایملک خودش یعنی مال و منادش با همچین قلینات با هم مصاحبین و این مختلن ها حالا اگه میتونستشون مثال بزنید کل انسان و عملو کل انسان و عملو یعنی <تصفيق> چی؟ هر آدمی با عملش با هم چین؟ هر نه آه. عملش بود متصل م باید معنای همراهی و همندی و همیشه یا کنار هم بودن به اون واقعا بفرمونه خبر هست میشه. دیگه نمیشه بگیم کل و والموت ولموت کل و رجلولن ولموت اینجا نمیشه خبر را هست که چرا چون خبر که از جنسی مخترهنا؟ هر انسانی با مردش همیشه با هم نیستن اینجا خبرش یلتقیانه ملتقیانه مخترنان نیست یعنی هر انسانی هر مردی کل انسانه ولی موتو چی؟ ملتقیان هر انسانی با مرد برخورد میکنه همیشه با هم پس بنابراین بعد از مفتدا ما است که اون واب صریح در معنای منیتو اقتران لزا خبر که محترنانه وجوباً نصب میشه مورد دیگه کل درجلن ولمود کل انسان ولمود شامل مثال چرا چون با هم انسان و مرد با هم قرین نیستند با هم چیان ملتقی هم با هم التقا میکنن برخورد میکنن هم و همیشه با هم این مورد دو مورد دوب زربی زیدن زربی زیدن قائمن حالا به جای قائمان توی کتاب های دیگه موسیعن نوشتن موسیعن مثال اینطوره. موسی با همزه موسیع یعنی چی؟ عبدوکر موسیع گنهکار مغصه موسیع نوشتن در جاییست که مورد رو جایی که مستد اضافه شود مثل ذربی که اضافه شده به فایل خودش اضافه شود به فایل خودش و حالی و حالی حال یعنی حال منصوب ها حال نهوی و حالی بعد از این مستر بیاید حالی بعد از این مستر بیاید که امکان خبر شدن آن که امکان خبر شدن آن و مرفو گشتنش و مرفو گشتنش برای آن مستر وجود ندارد برای آن مستر وجود ندارد در اینجا حال منصوب جانشین خبر شده خبر میشه واجبا الان نگاه کنی زربی زیدن زربی مبتدا مستر دیگه اضافه شده به یا فائلش و زیدن مفعولش یعنی زدن من زید را زر است. حالا امکان نداره قائمون رو ما رفت بدیم و بشه خبر امکان نداره قائمون رفت داده بشه بشه خبر چرا چون معنا غلطه میشه چی؟ زدن من زید را قائم است آخو زدن که نمییسته. شما میگی زدن من قائم است نمیشه یا موسی اگر باشه یعنی زدن من زید را زدن من چیه؟ گناهکار است. زدن که گناهکار نمیشه. ممکنه انسان گناهکار بشه اما زدن گناهکار امکان ندارد که ما چه کنیم؟ قائمون یا مسیعون رو خبر برادزه ضرب قرار از نظر معنا غلطه. خب پس چی بوده اصل عبارت؟ پس اصل عبارت زربی ضربی زیدن قائمن یا مصیعا این چنین بوده است ضربی زیدن حاصلن حاصلن ازا کنه قائما ازا کنه قائما یا مصیعا باشه ضربی مبتداست حاصلن چیه خبرش. این همون خبریه که های بگیر حصب شد ارزاز ظرف است متعلق به حاصلون متعلق به چی؟ ظرف زبان کانه فعل زمیر فاید شد کانه فعل زمیر فاید شد این کانه کانه تامون است فعل زمیر فاید شد که میخوره به زید میخوره به زید قائمان یا موسیعن حال است از برای اون زمیر کانم حال است از برای زمیر کانم معنای عبارتون وقت چی میشه؟ زدن من زید را حاصل است در هنگامی که حاضر باشد اون زید در حال گناهکاری قاملا ترجمه کردم که از ذره لفظی بدون خب اینجا میگن حاصلون که متعلق ازاست هزف شده حاصلون که متعلق ازاست هزف شده زیرا اگر متعلق زرف خبر واقع شد حسفش واجب است متعلق خبر متعلق ظرف خبر واقع شد حسفش واجب حاصلن حسف شد و ازا جانشینون شد و ازا جانشین حاصلون شد بعد ازا هم حذف شد و قائمان جانشین یا مصیعن. پس در اینجا قائمان یا حالی است که نیابت کرده از خبر درست و خبر هست شد اگر اگر حال به شکلی بود که امکان رفع دادن و خبر واقع شدنش وجود داشت واجب است رفع دهیم تا خبر شود واجب است رفع دهیم تا خبر شود و این تقدیرات را نکنی و این تقدیرات رو نکن. مثل اینکه عبارت چنین باشد زربی زیدن ضربی زیدن شدیدون زربی زیدن شدیدون اینجا شدیدون میگیم میگیم ضربی مبتدا شدیدون چیه؟ شده یعنی زدن من شدید است شدید میتونه خبر برای زدن باشه چون زدن میتونه شدید باشه میتونه خفیف باشه اما زدن هیچ موقع گناهکار آه. پس اگه مجبورمون گفتن که به چه دلیل شما بگید اینجا خبر باید باشه در تقدیر و موسیعن ها نیست که جایی اونیش هسته به این دلیل که موسیعن رو امکان ندارد رفت بدیم و خبر شد این هم مورد دوم مورد سوم اکثر و شربی از سویغه ملتونتن مورد سوم همان مورد دوم هست مورد سوم همان مورد دوم است. ال اینکه به آن مسترگ به آن مستر افعل و تفضیلی اضافه شده است، افعل و تفضیلی اضافه شده، و چون افعل تفظیل از جنس مزافون علیه خودش می باشد از جنس مزافون لیه خودش می باشد. پس بنابرای افل تفصیل که مبتداست است افل تفصیل که مبت در اینجا به خاطر اینکه اضافه به مستر شده، در حکم مستر است در حکم چیه؟ بخاطر نمیدونم چی میگفتیم؟ بخاطر این که نمیدونم از اون کتاب شده نمیدونم از خودم بگم اکسر و شربی مثل اکسر و شربی از سویغه ملتوطن اکسر و شربی از اکثر اضافه شده به شرب شرب مستر اضافه شده به چی؟ به یا فائلش از سویغه بگیرده مفعولش سویغه چیه؟ مفعولش ملتوت لطشه یعنی مخلوتش کرد یعنی مثل اینکه مثلا رو تقومه و سفیدیش میزنی قاطی میشه ملتوت اونطوریه یا مثلا آرد رو تو آب بریزید سرخ کنید مثلا روغنم بزنید این مخلوتی ازش کردش میشه مثلا تو فارسی چی میشه؟ معادلش قاطی تقریبا به خاطر خیلی چیزا بکنید اما ملتوت مایعاتی رو میگن که به همراه یک سری چیزها با همدیگه مخلوط بشه و یک شیء تقریبا مثل ماست اونطوری دردار اون این الان میگه چی؟ میگه بیشترین نوشیدن من اکثر و شوره نوشیدن من سویق را سویق یک نوع تقریبا قضاست به این شکل که درست میکردن آرد رو میگرفتن آرد رو البته آرد هم نه تقریبا گندمی که آرد نشده بود با سموسش مثلا نیمچاس یا دستاز شده بود یا حالتی که گرمه مثل گندم شکسته بریز مثل برخون بعد این رو با روغن سرخ میکردن ظاهرن سرکه و یک سری عدویه هم بهش میزدن یک چیزی شبیه پاشی در من این میشه میگه اکثر نوشیدن من سویق را اون زمانی که حسابی مخلوط شده باشه در حال که حسابی مخلوط شده باشه اینجا نمیتونید شما ملتوتون رو چکار کنید رفت بدید و خبر اکثر کنید جاره نمیشه به دلیل اینکه نوشیدن ملتوت نیست سویق ممکنه ملتوت باشه اما نوشیدن ملتوت نمیشه پس این حال است از برای سویق حال اما خبر برای اکثر امکانش نیست پس تقدیر عبارت مثل بالا چی بوده؟ اکثر و شربی از سویقه واصلون ازاکانه اون صبی ها ازاکانه ملتوتن حاصلون حذف شده ازاجاش نشسته ازا, ازا حذف شده چی ملتوت اومده به عنوان حال جانشینش شده و خبر حذف شده حالا اگر به جای ملتوت مثلا فرض کنید بود سریع سریع امکانی که خبر بشه چیه میشوند اکثر و شربی از صدیقه چی؟ سریعون یعنی اکثر نوشیدن من صدیق را چیه؟ تون، اینجا امکان خبر شدنش دیگه تقدیری نیست دیگه اکثر میشه مقتدار سریعون میشه چی؟ بله؟ یه مجاز می بله از <تصفيق> خب مورد مورد چهارم لولا لولا کلمه لولا در عربی به دو گونه است لولا در عربی چه دو گونه است یک لولای امتناعیه دو لولای تحویزیه لولای تحزیزی قسم اول قسم اول یعنی کلموش همجوری قسم اول بعد از او جمله اسمیه میآید قسم اول بعد از او جمله اسمیه میآید و قسم دوم بعد از او جمله فعلیه می آید فعلیه قسم اول دورا رو امروز میگیم خدمتتون که چون بحثمونه قسم دومش که لوولایی چی باشه؟ تحزیزیه باشه میریم انشاءالله تو بحث فخواهی لولا امتننایی آن است که جواب لولا جواب لولا ممتنع گشته است. به خاطر جمله بعد است لولا به خاطر جمله بعد است لولا مشخصه؟ ماننده لولا علیون ماننده لولا علیون لحلک اومر لا که عمر الان لولا لولای امتناعیه علی مبتدا خبرش واجب الحسن به موجودون بوده یعنی لولا علی جون موجودون یعنی اگر علی وجود نداشت این لام در ممتنه گشته است حلاکت اومر از نظر گویندش خود عمره ممتنه گشته است به خاطر وجوده آقا امیرون علی علی یعنی اگر علی نبود عمر حلاک می شود. یعنی چی؟ یعنی علی بود و عمر حلاک نشود مشخص گوش تفسیر لولا لولای امتناییه لولای امتناییه خود بر دو قسم هست لولای امتنایی خود بر دو قسم است یک لولای امتناییه یک لولای امتنایی غالبیه امتناییه گفتیم که فهمیدید چرا باش میگن امتنائیه. چرا میگن چون جوابش ممکن شده به خاطر جمله بعد از لولای غالبیه است زیرا خبر آن جمله اسمیه بعد از دولا زیرا خبر آن جمله اسمیه بعد از دولا از افعال عموم است افعال عموم ای که دلالت بر هستی میکنه ها وجود از موجودون، واقعون، حاصلون ها اینطوری از افعال عموم است و واجبل هست و واجبل هست مانند مثال مانند غالب در استعمال چیه؟ قالب در استعمال یعنی اگر شما لولای امتنایی هره بگیرید ست تاشو 80 تاشو اونیه که بعد از لولا چیه موجودون هست و هست شده به این دلیلش میگن لولای غالبه دو لولای امتنایی غیر لولا لولای امتنایی غیر قالب لولای امتنایی امتنای غیر آن است که خبر جمله اسمیه خبر جمله اسمیه بعد از لولا از افعال خصوص است از افعاله خصوص است مثل لولا زیدون مثل لولا زیدون محسنون الیه محسنون الیه لحلکتو لحلکتو در این مثال هستی زید هستی زید باعث امتناع حلاکت نگشته است. هستی زید باعث امتناع حلاکت نشده بلکه یک فعل خاصی از زید بلکه یک فعل خاصی از زید که احسان او باشد که احسان او نیکی کردن او باشد باعث عدم حلاکت جا. اون فعل عام که وجود زیده هستی زیده که همه چی با زید در این شریک هم الان این ستون با من در هستی شریک منم هستم اونم هست افعال اون بوم همه یه جوری تو هستی داشتن هستیش باعث نشده که حلاکت چی بشه ممتنه بشه ممکنه زید بود ولی احسان نمی کرد بازی چی میشه؟ حلاکت بشه بلکه اونی که باعثه عدم کرد شده چی بوده؟ احسانش بوده. اینویش میگن لولا امتنای غیره. خبر این لولا خبر این لولا خبر جمله اسمیه بعد از این لولا خبر جمله اسمیه بعد از این لولا واجب الحذف نیست واجب الحذف نیست بلکه اگر غرینه ای وجود داشته باشد مانند سایر کلمات مانند سایر کلمات جایز است اسفر. جایز است بگید مشخفه است پس الان ببینید ما کدوم قسم خبرش واجه برسته تو بین لولاها لولای امتنایه در بین لولاهای امتنایه لولای امتنایه قالبیه که خبرش از افعال همومن. اونجا واجب است که هست کنیم این یه مثال بزده من بحث لولای تحزیزی ها رو دیگه نگفتم مگه اونم مخواستیم بگیم که دیگه دولانی چون ربطی به این جای بحث ما لولا علیه السلام که جمعه دعاییه یعنی لولا علیه موجودون لا امر لحلکه حتما حلاک رو شد آقای این آقای که این جمله که خود عمر گفت و شاید قریب به هفتاد، هفتاد و دو سه مرد رو به خود کتابهای اختی سنتش ایه نوشنن که این جمله رو به کار بود که در احکام و دستوراتش خطا میکرد آقا امیر این جمله خطا رو میگرفت و او بعد از میتراجه شدن و توضیح شدن او گفت یعنی نبود ما حلاکت نصیب می این می بعدی؟ اگر کلمه ای که صریح در قسم است در قسم است یعنی فقط در قسم به کار می‌رود یعنی فقط در قسم به کار می‌رود مانند کلمه امر مانند کلمه امر که به معنای عمر است عمر و حیات است به معنای عمر و حیات و زندگی درست درستو است عمر که مرادفان است عمر که مرادفان است در غیر قسم به کار میره امر فقط در قسم میگم من میتونم از شما بپرسم کم كم رو که عمر تو چقدره میگی مثلا 20 هست ولی نمیتونم ازت بپرسم کم رو کرد دوتاش یه معنی داره اما امرش فقط در به کار میره عمرش اگر یک چنین لفظی مبتدا شد اگر یک چنین لفظی مبتدا شد خبر آن خبر آن که قسمی یعنی قسم من که قسمی یعنی قسم من باشد واجبال است باز واجبال هست باز و جواب قسم و جمله جواب قسم جایان را پر میکنه. و جمله جواب قسم جایان را پر میکنه. مانند مثال لا عمر که، لا عمر که، لا عقumen، لا عمر لا عقumen. که بود از لا عمر که قسمی، لا عقumen. بودن لا عمر که لا عقumen. لامه لا عمر که لامه لام لام لام لام ابتداییت. یه روزم خوندم. لامه ابتداییت که تو لب مومنون بود آره که مفیده چی بود؟ تحجیب لامه نه امروکه لامه ابتداییت امروکه مضاف و مضاف و مبتلا مبتدا امروکه مضاف و مضاف و مبتلا مبتدا قسمی که خبر اون بوده چی شده؟ ازوشد این جمله رو بهش میگن جمله قسم لهم که قسمی روش بیان جمعه قسم لعقومن مزاره با لام و نون تحکید جواب این جمله جواب شد و این جای خبر رو لهم همام شد نقط سرخد اینا موارد وجوب قسمه چی بود؟ خبر بود. چند چنده شد؟ پنج پنج داشت یا شیش داشت زیعتوهو یک زربی زیدن دو اکثر شربی سه لولا علیون چهار لهم رو کرد پنج مورده که برای تو شرف و بستش رو و اینها در هر کجای دیگر که بیاید آ، مر رو به لقوه مر رو اگه اینا دفعه بعد بیاد مثل لغ از کنارش زیب. اشاره خواهیم کرد و گذارمش ولا یکونو نکرتن الا مع فایدته لا یکونو مبتدا مبتدا نکره نمی شود مگر فایده داشته باشد جایز نیست که مبتدا نکره باشد مگر اینکه که ای داره باشد حالا فایده در کجا بود؟ جایی که نکره مخصصه شما حالا نکره به چه چی چیزهای مخصص میشه دیروز کنیم یک موضوع داشته باشه صفت داشته باشه مثل لعبدون مومنون خیران منمور شده اضافه شده باشه بلام و رجولن فدار بعد از استفهام باشه بعد از نفی باشه دیگه جمله دعا باشه مثل چی؟ سلام علیه بعد سفت در تقدیر باشه. مثل شرون احر رزا نابین یعنی شرون از این جار و مجرور مقدم شده باشه و مبتدا نکره باشه و معخر باشه و اون ظرف و جار و هم اون نما وقتی که فعلاش تکرار شد. ولخبر خبر. ولخبر اول مجرد و خبر هم مجرد از عوامله. ها؟ به ابتدای. ولخبر اول مجرد و الماست ند خبر اسمی است، مجرد کلمه است، مجرد که اسناد داده میشه با او. یعنی اون رو اسنادش میدیم به الماست ند. و هو موشتق و خبر گاه اوقات مثل زیدون قائل و گاه اوقات جامعه مثل زیدون اسدون انا زیدون ها انا زیدون انا مبتدا زیدون چیه جام ها زیدون اسدون جام زیدون قائل منت مشتق بنا شو فعل مشتق مشتق دو جوره یکی مشتقی که فالمشتق القیر و رافع لظاهره مشتقی که رفع به اسم ظاهر نداده پس بنابراین رفع به چی داده؟ زمیر مشتقی که رفع به زمیر داده مثل زیدون قائمون که یه زمیر و در قائمون هست که برمیگرده به کی؟ به زید میگه المشتق مشتقی که القیر و رافع لظاهره مشتقی که این صفتی داره رفت نداده است به اسم ظاهر متحملون لزمیرهی متحمل است در ضمن خودش دارد حامل است زمیر رو. یعنی الان زیدون قائمون در قایمون یه خوبست برمیگرده به زیدون حالا اگه شد از زیدان اون میشه چی, چی؟ قائمان ها تصمیه میشه اگه شد از زیدون اون میشه؟ قائمون درست شو متعاملون ن زمینید ویه تاباق هو دائما مطابقت میکند این خبر مشتل مقطدا را دائما این هم میشه. هم مطابق زدان قائمون از زیدانه قائمانه از زیدون قائمونه هندان قائمتون یت توش مستطره هندان قائمتان الهندات قائمات درست فریتابه او دارد به خلاف غیرهی به خلاف غیر این مورد غیره کدوم مورد؟ مشتقی که ظاهر نیست غیرش میشه چی؟ غیره این مورد مشتقی که رفت به زمین یاده میشه غیرش دوتا یکی جامعه که اصلا مشتق نیست یکی مشتقی که بگید رفت داده به اسم زاهر. منا جفتشون غیر از مشتقی هستن که ریشه بده زن. اون به خلاف غیری. یعنی غیر مشتق غیر از اسم مسابه. یعنی اونی که جامد است و اونی که مشتق است اما به اسم ظاهر یافته. این دارای زمیر بگی. اگر جامد باشه که زمیر نداره. هل کلمت اول هل مبتدا و مبتدار لفظون خبرش دیگه زمیر و و لفظون وجود انه زیدون دیگه تو زید زمیر و حوات نه و و لفظون زیدون انه زیدون درست شد. این مال اون مورده گفتیم به خلاف غیرش غیرش دوتا میشه یکی جامد یکی مشتقی که رفع به اسم زارد حالا نگاه کن هندون قائمون ابوها الان هندون مبتدا. قایمون چیه؟ خبرشه ابوها فایل قائمون. میبینید که اب از اسمای زدتس رفت شده به بار. اینجا هم دیگه داخل قائمون زمیر نیست نمیتونه که هم اب فایلش باشه هم زمیر اگه بگیر رابط خبر به مبتدا کو میگیم کیه؟ های ابو و سلاله آقا بسه